درود بر شما این پادکست خلاصه ای صوتی از مقاله کامل است که در وبسایت ما منتشر شده. مسیر ساخت نیروگاه خورشیدی. احداث یک نیروگاه خورشیدی ترمایگوزاری بسیار مطمئنی است که موثریت آن به چهار کیلووات اصلی بستگی دارد. کلید اول و دوم پژوهش و توسعه برای تضمین توجیه فنی و اقتصادی است. کلید سبون فاز ای که شامل طراحی خرید تجهین و ساخت است. کلید چارم بهره برداری و نگهداری است که حدک حد سرسازی تولید و طول عمر را شامل می شود. یکی از مهمترین عوامل انتخاب سایت مناسب با بیشترین تابش خرشید است. هزینه احداث بسته به ظرفیت متغیر است اما بازگشت سرمایه معمولا بین چهار تا هیست سال بوده و پس از آن